اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد الحمد لله رب العالمین و الله على سيدنا سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاجرین المعصومین و اللہ تضایمت و علیه ادائه اجمعین اللہ جميع المشهدین ورحمنا رحمنا رحم یا ارحم الراحمین بعد در باری مسئله بود مرگوم شیخ متعبست شدن و اجمالا که حالا روشن شد که این مسئله در کلمات اصحاب ما قبل از شیخ مطرح شده و حتی تحلیفات مستقلی راجبون شده کتاب سیدن تاوز و قبل از سیدن تاوز و ایشان بزرگان ما صحبت های راجب این بحث تنجیب راشن. بعد شو رو کنیم. که اول ما روایات رو می‌خونیم در هر ذ که وارد شده یه یواشوش تقسیم بندی روایات هست اونجا به هر روش‌ها روشن این تقسیم بندی روایت روایت مطلق است که الان در زبانها ها خیلی جاریه ان جم و صاحب و صاحب کائن و صاحب و کائن و کافر و کافر و زن یا امنجه و مرعون این مقدار بحث روایات مطلقه است به اصطلاح ما مقدار روایاتی که انا مطالب دیگه این داره روایت مطلقه به سال چند کشت لابلای کلمات آمد و به لحاظ سند همه اینها مشکل سندی داشتن این اون روایت مطلقه این که روایت فرمون بیم که در آخر زمان حالا آخر زمان داره بودن ایمان به نجوم ایمان به نجوم رو اونجا مثلا جز روات مط قرارون که ایمان به علم نجوم مثلا موجب مثلا درست تعی که علامات آخر زمان باره. اون روات بد نیست دا که شد که مراد از نجوم احتمال داره احتمال بسیار قوی داره که کنایه کهران بر از نجوم ایمان به بهاب مادیگری به اصطلاح نووز. انع یعنی کسی ای ایمان رو به خدا هم باشه این نجوم در مقااض بر خدا ایمان به خدا نداشته باشه و ایمان به ماده نجوم کنایه از ماده باشه ایمان باشه اونکه که معصر و مترسر و فعل و افعال و جاویدان و عبدی و عبدی و به قول منتعبیر این به پارسی همه داره از به قابل معروض روپا نه ما می میره نه جدید تولید میشه این همونطور ادامه داره ازلی و عبدیست این مطلب راجع به ایمان به نجوم شد چنایه از این باشه نه اینکه این و نه حتی این نجوم. مثلا به مخدرات نجومی و تاثیر ستاره و تاثیر کواكب و بُعد و قرب اونها و اقرام اونها و اتصال اونها و امتر... نه این که فکر نمی نمی‌کنم ظاهر اون حدیث این بود. علاوه یکی از مطلقاتی که سنش خوب بود این بود که تا حالا به دلالات گیر داشت. بقیه در بقیه روایات که چنین روش نمی شه. طایفه سوم از روایات یک خاطره راشی خوانده احترام آیه ها روایتی که جوج امر به احراق داشت. اگر این روایت فعلا پیش ما یکیه همه سه خواه سا و سائل هم این روایت داران عبور امر به احراغ کتب رو هم لیکن این روایت پیش ما یکیه و اونم روایت عبدالملک بن اعیا که در باب اول از باب 14 حدیث اول از باب 14 از افواب آدام و سفر احسن این این که پیش ما هست جلده هشتون هوایل حجه هوایل ایشان برمون صاحب جواهر و برسایر نومونه به لحاظ این دواله از فرین به لحاظ سنه اولا اون چی که در کتاب فقیه هست بعدش رویه هست بعدش رواه هست این یک شبه داره حدیث و ارز شد به این که طریق مرمون به آیه چیز به فرمون به صلاح عبدالمرک نریف از راه خاندان برگیز به یونوسف نفد رحمان ذهن ما این خالی از شبهه نیست و دیروز سند رو خوندیم طریق مرحومه به صدا. اون سند یعنی شبیه این چون در این حدیث اگر این باب دستانه هست باب چهارده همون باب چهارده حدیث چهار این هم هست این محمد ابن علی ماجیده بگیم مثل همونه ان محمد ابن عبدالباسم از واقعا من هم نمیتونم. شیخ صدور هر جو میگه علیه، بلکه عبارت نجاشی این است که شلون جت بشه، تصریح میکنه. من روز بعد اطلاعات گفتم بعد شما رجایی کردن، تکلمش اون زیاد باشه. این محمد بن عبدالقاسم گفتم داماد برفی پدر یعنی داماد برفی دشهرمانی اشتباهه. داماد خود احمدی. ولذا این نوشه محمد بن علی ماجیروی نوی شانه ایشون میشه نوی برفی پسر به اصطلاح. نوی اورجردش. اون روز من اشتباه کردم نسبت به او دادم و این محمد این خود محمد ماجیروههه ماجیروهه اسمه کنیه محمد پس محمد ابن علی ماجیروهه نوه ماجیروههه این محمد سر علیه علی به سر محمد ابن عبقاسمه اگه کتاب دیروتون باشه ماجیروهه خود محمده عبالقاسم پدر ایشان بندار دار محمد بنداره نه پدرش بنداره لقب پدره که قاسم باشه بنداره اما پسرش که محمد باشه لغبش ماجیرویه که از کلم ماجیرویه زبط سید ماغگلویه یعنی کسی که سرشت ماه داره تینت ماهی داره ماغگلویه و حالا از باب گو کر کلام یا کلام بریدم نیست محمد ابن علی ماجینه بیر به نفع اضافه من این دفعی هم خیلی وقتا یه توضیح از کردن در فارسی قدیم حالا نیست در فارسی قدیم از قلبهای چار و پنجشیشون ها به این طرف به جای بین در لغت عربی کسری به اسم اضافه می اصلا مثلا می گفتن محمد بن زن، محمد بن زکری های رازی در فارسی گفتن محمد زکری های رازی محمد این کسره به جای بن در مطون قدیم آنگی که با سر کار دارن دقت بکنن. این مثلا ابو علی ابو علی, ابو علی ابن سینا اسمش خسین دید یا حسین ابن ابن سینا سینا اسم میشه این ابو علی سینا ابو علی این کسره علی به جای بن در لغت فارسی قدیم در متون فارسی دعید ای هم اینجا اینطور باشه محمد بن علی ماجیلوی علی اصفلره نیشانه و علی پسر ماجیلوی اگر اون زابطه باشه محمد ابن علی ماجیلوی خونده بشه به الله باز باشه اینطور باشه محمد بن علی ابن ماجیلوی چون ماجیلوی به نوشته نجاشی البته لقب محمده علی هم پسر اینشانه باز اون محمده هم باید به سر ایشانه به سر علیه پس این تصریحی داره نجاشی میگه ان محمده نه علی ماجینه ابیه علیه ان ابیه علی محمده نرخواسه تصریح داره که محمده نرخواسی جده شه اما هر جو آزه کتاب صدر روزی میگه ان ام میری این اموی ایشانه جده ایشانه منم هم خیلی همون سردرنگ می‌دونم مگر یک ازدواج دیگه کرده مادرش گرفته بیوشی گرفته یک چیزی مثلا به الا به هر سر ظاهر خیلی منسجم در نمی دو عبارت صدوق با عبارت نجاشی به احتمالی که صدوق این مقدار مطلب منفرد نشه اینا ها جد استادشی یا امنی استادش خیلی بریده خیلی بعیده بعید ذهنم به هر حال من در اونجا توضیح دادم روایات برقی پدر از یونس خیلی دهیده خیلی بعیده الان در کتاب ای که ما داریم به استثناء فقیل ما نداریم یک مورد در کتاب روزه کافی داریم اونم همینطوره برقی پدر از یونس یه مورد دیگه در جلده کافی هست در اونجای داریم از برقی رفع او. تو روزه همینطوره محمد برقی انیونس رفعه لکه در برقی از مستخصن انیونس نیست این این یونوس نسخ بدره یعنی محمد برقی رفعه لذاب اون چی به ذهن آدم اون صاف نمیاد اون مطلب درست باشه بله در کتاب تحقیب و هم کلن نبریم رو برقی قدر از یونس. تازه یک دون حدیث در کتاب کافی داریم در کتاب کافی به این صورت برقی از یونوس میگن پیش هرده لذاب دارم از درد نقش انگوشتر در این بود که احتمالا کتاب ن است جنبه به اصطلاح نقل شفاهی باشه در کتاب مشیخه مرحوم صدوق چهار مورد به بعد از عدد پنج چهار مورد داریم دو تاش همین فامیلا هستن محمد بن علی ماجدی از پدرش از بغدی یعنی از بدر دانش نامه خاندان دو موردش هم علی بن حسین سعداوادی از بغدی این مورد فامیلی چه که خود فامیلی که دیدون سوزیه شدیم علی ابنها این به حساب خود محمد نهرین توسیغ نداره به لحاظ اشکال سنبی محمد علی ابنها حسین سعزابادی هم چند افراد دارمی شد بحث رو گفته باشن علی ابنها حسین سعزابادی مانفردن از برگی پسر نرمون کنن خیلی عزیب از هیچ کسی نرمون کنه. هر چی که ما اسمه علی ابنها حسین سعزابادی درستان برگی احمد برگیر احتمال و انفرادم زیاد داره که کسی دیگه نرم نکرد احتمال میدم شاید بعضی مطالبی مثلا برقی در اول نرم کرده چونها نرم کرده رو بعد برقی برگشته خود برقی هم برگشته احتمال میدم اینطور بر حال دو موردش خانوادی یه دو موردش هم سعدابادیه که انفراد داره اتمینانی فعلا به این نیست. یعنی خیلی بعیده این نسخهی باشه از کتاب یونوس که اگر نصح باشه باشی نصحی شازیه قبولش خیلی مشکله برای به ذهن ما بسیار مشکل و یک شاهد دیگه خیلی مهمی مطلب ما این همه روایت مجموعا در زنی مختلف در نجومی داریم احرق کتبت فقط تو همین روایتیه هیچ جدیگه نبکیم احرق کتبت تو این تایفه فقط یک دانه روایت یکی از مهمترین عبارات کتبه چون از خطا دارن که اینا تاکید در جای ارشد گفته کافر از اونان و هم کردن بهراه خود به وجود نداریم ما امر به راه خطاها نداریم توجه نشده اهر کثوبت داریم. در نتیج روایات من چران عرض کردم اینا تکرار می‌کنم دیدگاه‌های مختلفی هست یک دیدگاه میگم اون ظاهرش عرض می‌کنه حمله بر این دیدگاه داره دنیای رو من مثلا سعی کنم اشراق دادم قبول نکنم لاخر حد عمل بر, بر استفاد سه حمله بر کنایه آخر خطبه یعنی این علم به درد نمیخوره نه اینکه برو بسوزون امامی. امامی امامی کتاب سوزی مراد جدی امام نمیخواد بگم این کتاب بسوزیم مراد جدی مثل زیدان کسورما مراد جدی یکی از این شواها استفاده نکن کنایه است نه اینکه کتاب سوزون در مراد باشه احتمال چار رو هم غالبا که اینا نمیدن ما حرف کردیم و اون که این اوامر حتی شخصی باشه حتی از بحث و اصولی خارج بشه. نه کنایز کنایز نیست سریع هم هست و یک امر است اگر امر شخصی باشه به هیچ قابل تعدیه به شخص دیگری نیست فقط همه عبدالملک نعیم چون عبدالملک نعیم به امام عرض میکنه. من طبق نجوم نگاه میکنم ناسه این کار کوب میرم این کار برده میرم یعنی ما اون ترموز از تغذی ترتیب اثر هم میگی یعنی اونو که خوندی تو کتاب ها این رو واقعی میدونی میگه بله قلع تو بستی حضرت اون بار این رو بسوزون مثلا حضرت میدونستن از وقتی امر شخصی شد خب بیخار دار کنیم حضرت میدونستن که این دو تا جزوه در نجوم گیره شامده میدونستن که این،, این که در نجوم اعتماد کرده اینجور پیش میدونه کار جزئی رو با نجوم میگه این دو تا از هر هند و این جزوه هم باطله تو علم نجوم هم باطله <تصحیح> لعاقل تو علم نجوم نیست که قضا باشه که انسان بگه که خطه انه همی زوره. نه اینکه انسان بده یک لاغونی تو علم نجوم همه را آکیش بذاره خوب درم این امام میدونه این از ترجمه اول از ترجمه اومده تا طبق این نوشته های بیات عمل میکنید دقیقا واقعیش اینجوری می میگه بله امام میفهمه این میدونه که این مثلا در اون زمان دو تا جوزه از کتاب تراس از هیل مثلا فرض ترجمه شده به دنیای عرب و توش اینجور داره مثلا اگر حالا اینطور بود این کار انجام بده حتما بیاتمن بر مواد و فلان ها یوت صحبت امام مثلا اون سوال رو که او در, در, در, در, در. مراد از احره کتبت اصلاح آقای اصولی ها اضافه به اضافه احریت یعنی کتب محهود نه اینکه که مراد این باشه اصلاً یک کتابانه خانه ایلونیونش همه را میزنه این چیزی اصلا مراد نیست و این فراد رویوارد هم بهترین گلیبه نه فضا که اینجا اطمانه ما یه توضیح داریم اصلاح بحث فضا رو چون برای قضا در تو قضا دارم ده تا دا معنی ها زید کردن ما از ترمون معنی محایش اتمام قضا تمام شد و قضا همه سر و سر حالا اتمام تکلیمی باشه اتمام اعتباری باشید نه نه, نه نه نه نه از یعنی اگر در تاله دیدی تب اون تاله رو صد درصد درست درست میدونی میگه بله امام میدونم چون تازه این روزی شده بود امام میگه که جزوه ناقل تو مزخرف داخل خیلی داره در هست که می‌کنه. در روزنامه هستن طالب بیرو داره تو میشه؟ روزنامه چاپ میکنن، حاله باج پررگین و بلاست. این آقا میره میگه روزا یه اب اونها فرق میگه آقا من مثلا متعهد بچه قرآن هستن، ده این اینطوری میشه، داره. مثلا اینطوری این میشه. این کار انجام کسی از مثلا تهمیه منه، برای روش... <تصحن> میگم وقتی که میفهمن که این میاد روی ها و طبعاً اون زمان حالا هاغم کتابخانه وجود باشه تازه اینها ترجمه شده بود دقیقاً امام فند از اهل کتبی‌ها برو از دور ببینون عترتی هم باید حجات کنه اهل کتب یعنی چرا چرا چون اگر تحریر نبود شده می‌گفتن که کتاب‌هایی که نوشتن مثلا دلالت میکنه اما تغذی مثلا که باید حتما این کارو بکنی اگه این کارو حتما ضرر می‌بینی امواج از بین خب این تصبینی که خلاص نه هر خطتون یه لوزه حالا تو این تعیبی مثلا این دو یه نه از هم دیدی تصبینی من خودش دفتره تو میگین یعنی چی یعنی چه به اون نوشته ها انجام میدید بگه بله من فکر می‌کنم از اون نوشته باطل باشه چجوری شده اصلا من انجام نمیدم کامل از اون نوشته چیزی نمیگم شماها یعنی خصوصی سوال دارید من ساعته نگاه می‌کنم این می اپتلی شوگاه دارن مالی میشه تا خب به نظر میاد ممکنه بشه ممکنه نشه ممکنه نه که که از حسابای خوب درسیات میگیم حتی هم زوائدش رو میذارید که مال فال شو این شون ای نیستن می این میگه دلیلش مدخر به دستی طرف ورشیده زندگی چه طرف میکنه فرقه اون که یه هم این اهره کتبک اشاره به که چون وقتی این یک خامیل صورت نزدیکی تو هم هست مثلا چشمش هم آبیه نمان بسن <تصحیح> بسه او چشمش آبیه ممکنه پردار رو با کچه ده این کسی که بناس اغاغا کنه رو نوشته های وجود امام میفرمز این نوشته ها خود چون خیلی این جذیگیات در آوردن از اون علم کنونم باطله اگر در حد احتمال باشه یا بابا بیشون دلارت باشه اما راجع شما دیگه این کار را حتما انجام می‌ده که انجام بدی ذره از این به خاطر نبر چی می‌خوایشون نفس لازم یک چیز را اجبار دوزاده قبول باشه ولی ذا به ذهن بند این احراق کتب این طایفه اصلا ما خائذه به امر به احراق کتب نجوم نداریم روشن شد هم همچین چیزی ما داشته باشیم که حالا استحبابا یا وجوبا که انسان از نیست که کتب نجوم به آتش چون این چیز رو به اقمام ساده سلام, و سلام, و سلام و علیه نروایت سمزش نقیه اگر مسترش کتاب یونست باشه نسخه شاد نیست کتاب یونست کتاب یونست اصلا اسنادش هم روشندی چون رویان عبدالملکه معینه اینها تازه این قصدش هم روشندی مضمونش هم که به طریق اولا روشندی و نظام روایت منحسره در هیچ مستر زیان نیامده صرف انحضار روایت همینه به نظر ما بهتین را توجیه روایت و هم در روایت بر قضایه شخصیت نه بر نوبی. این اینجا تنها نیست مثلا روایت داره حضرت موسف جفر به علی نیفتی چو میتونه چون مثلا موته انجام داریشون تو امکانات امکان خوب رو کلیس کنیز بگی خب این رو آیون نوشتن فر... چون وسائل هم حتی فتح فرد که اگر انسان امکان داشته باشه استحبان موته را میشه. اونجا همین همی رو ما دادیم معلوم نیست از از از این به این کار برداشته بشه چون اون مورد به خاطر تمکن علی میاقتینی درسته علی میاقتین تمکنش میتونست بهترین کنیز ها رو جهی که زن هره که یا درست همه که موتم بکنیم میتونست به اخری کنیز بخنیم چون علی میاقتین وزیر هارون هم بود و اگر معلوم میشد برای حارون که این موت انجامی احتمال بدیم اون عرب شخصی باشه دقت اقرد نه اینکه که هر کسی که پول داشته میکنه مالش خوب بود دیگه موزه برای شده آزدر بسته یه آیان جمع کردن بین عدیبه به این ترتیب این از اختصاص به اینجا نداره ما معتقیم در قده از موارد هم اوامر شخصیه اینجا بریمی و تقضی از تقضی قاله نه داره داره؟ نه که اومی <تصفيق> نه اسلام ندارم چه اسلام نده. این راجه به روایت اول راجه به روایت دومی که در باب 14 آمده و به اصنادی هی ان محمد نفیز از ان ابی جعفر علیه السلام قال کان امی رومونی علیه السلام یکون لا تأخذ اینجا لا تأخذ همه کتاب همه شما آمین کتاب دارم با خودشون همه لا تأخذ اونی که در خود فقیه لا آخذ هست غیر از نسخیب لا نأخذ در فقیه که بدن لا آخذ بود لا آخذ و به قول عرافه ولا قائفه ولا لست هم گفته شد دوست و لا اقبر و شهادت فاسقه این لا علا نقشه این کلام از در این رو عراف در منجم از معرفت. یعنی ما آگاهی داریم به باطن امور و به دنیا و مافیا و تمام افساخ و همه رو آگاهی داریم بیرون عرف می‌گسن ان شاید متقی دیگه مثلا بوده در حال عرف مراد منجمه اون گفته شده کاهن چون یکی از بیمه و خارج داشتن گاهی به این گفته گوی بون گفت محل استشهاد لا خود به قول عرف اصل مسن و واسط این کلام درباره این روایت مبارکه از اذهیم این روایت رو و نقل کردن به اشتراک محمد بن قیس که محمد بن قیس در اینجا مشترکه و لذا حدیث قابل قبول نیست. حدی هم جواب که درست مشترکه اما انصراف داره به محمد بن قیس بجلی که صحت. من توضیحاتی راجب این جهت چون این جهت خیلی بحث طولانی داره نه یک جلسه که چی چند جلسه موقعش صحبت کنیم ختم نمیشه. راجب این مطلب را این الان صحبت نمیکنم چون که طولانی. فقط اجمالاً عرض یکی اینکه گفته شده محمد بن قیسی که در اوتام وقت اینطور شورا انوی جعفر و قضایای امیرالمومنین این مشترک بین شاه است من شايف این کلام اصولا شیخ نجاشی اگر شما عبارات نجاشی کنار بگذارید میگه این چوبه پیش نمیاد ما همیشه معترب که قبل داریم که با یک بحث علمی میشید از بالا نظر بگیرید این از کجا پیدا شد ما در کتاب‌های قبل از نجاشی چارتا رو نداریم این این رو تصریح کرده به 14 تا و نظام منشاء شده که بعديها هر جا حدیثو میگم راه مشترک کن وقتی ایشان چهار نفر بود یعنی محمد بن رقی به وجری برورده اساسا بعد گفت یک محمد بن قیس تو این که لهو کتابون فيه قضاء و امور المؤمنین ولنا محمد بن قیس آخر هست ونا محمد بن قیس چهار تا محمد بن قیس رو اینجا پشت سر هم آورده این منشاء شو روشن شو بعدیا کاملا اگر حدیثی که محمد بن قیس شد نیم مشترک چون ناجیشی که البته ناجیش از این چهار ای تا که چه سره میدونه که بجری باشه یا که ممدوحون به نظرم عثی رو میگم ممدوح و یکی رو هم ضعیف میدونه یکی هم ساکت شده لازم میگم مشترک بین ممدوح و سره و زریف و مجهول این بضعه محمد بن قیس و خیلی در کتب دیگه یکی نه نیست شاء در کتب روایت میخواستم رد بکنم یه این وقتی وقتی هم محمد اینای تو هم بین سرطن و منبوهن و زعیفن و مشهور این چهار هم در کتاب نجاشی آمده ما ها این توضیح کافی دادیم تش اینجا ریست مناسب می و که این که فقط مختصر باشه چون ظلافت ها ملاحظه نشده تا همین زمانی که من در خدمتان هستم ملاحظه, هستن. ملاحظه, هستن. ملاحظه هستن هم. تا زمان. اولا خوب دقت بکنید مردم نجاشی کتابش اصولن فقه است و کران عرض کرده ایشون فقه است نه رجال ننویشتن متصدی حال راوی به موه و راوی نمیشن ایشون متصدی حال مؤلفین هستند این به طور کلی در این چارتاکی ایشون نوشته دو تاشون راوی هستند صاحب کتاب میزن این خرج از وضع کتاب محمد بن ليس اول که وجلی باشه لو کتاب قضا امیر المؤمنین و محمد بن ليس دوم اونم لغو کتابی قضا امیر المؤمنین اون دو تا ایشان راویان یا علمای اون چون شهرت کتاب نجدی به جالب تفتن اصلا پیدا نکردن این ماجرا که اون دو بعدی اصلا راویان هستند اصلا صاحب کتاب نیستن کلا بیا حالا نبوده نجاشیورت انصافا حق این بود که نجاشی فکر نمیکنم که رجوشی بعدیا تعامل در کلمات ایشون و در اشتباه واقع میشه اصلا اون دوتا صاحب کتاب از اصلا نویوشن خارجی هم از نوع اطلاع نداره این کیه اون دو نفر چون چند روایت معنیشون در این دو این کلاجی دو نفر رجی ای به این دو نفری که نوشته راجب نفر اول که هم محمد بن قیس بجلیس از بغیله است از, از بزرگان اصحاب در کوفه است که کتاب و غذایه هم میگونم این این درسته دومی هم نجاشی به نظر ما اشتباه کرده دیگه آلا شرح اشتباه نجاشی چیه توبیه طولاری بخواد لیکن که نظر از های تاریخی و اشتباهی که نجاشی به نظر ما شده دقت بکنید اصلا آخوی فرموسیال کنیم که از یک غذایه علیمانوسی لاغت به دو اولی و دومی توجه نشده. نجاشی در برای اولی باسه لحو کتاب قضا یا امیر مومنی. در مورد دومونی باسه لحو کتاب اون خیه قضا یا امیر مومنی. که متاسفانه توجه نشده. نه این دیگه مقام. این اش... نجاشی شما سرید مثلا مکلب ایوی نویشی به لحاظه علمی قلم نجاشی اصلا سنگین قلم عدوی سنگین یه پنجم. قاهاروم و 50 اواخر نیمه دوم قرن 40 به ذهن من این یک قلم ادبی شیخ ادیبانه نمیشه کشیک اصلا کلا خراسان بوده که به حالته عجم گونه برایش اما مرمون نجاشی ادیبانه است مثلا کلماتش ادیبانه است سنگین ادبی متن ادبی است این ادبی به اصطلاح امروز مثلا مس یه ادبی علمی سنگینه. علم نجاشی این نجاشی که لهم کتاب قضا هم میرون مونی دومه رو, رو گه لهم کتاب اون فیح غذای هست اینه توجهه به کلمه فیحش نگرده یعنی یک کتاب از رسو کشف بل مانن توش هست و همینطور هم هست این شخص دومه هست این نیست که نجاشی اسمشو برده این تو سونیا هست جا به جا شداره برا اینجا هم نجاشی هم داره جا به جا داره, داره. الان من وارده بحثون بکنیم فیلانه یک کتاب اوشان بکنم و بعد درسته درسته یک و کتابون در این کتاب بعد از قضایی هست اما نه این که کتاب قضایی همیر اون اونی که قضایی همیر مال همین بجریه صاحب کتاب قضایانه اون یه نفره پس مشترک نیست اینو هی در آورده شما کتاب های زیادی بخواییم جواب بگرم از مشترک این است قدره بخواییم بحث مشترک نیست یک نفره با اون محمد نیزه بجرگی ابه هم هم نداده نجاشی یه مطلبی نوشته. بشه نجاشی فهمیده نشده منجر شده که بگن آقا محمد نقید چار سا کتاب دو تا داریم نه خیلی صاحب کتاب یک نفره اون آیین کتاب داره اما کتابی که توش مثلا موادد و اخلاق و قصص بعدشان غذای عزیز مومنی اون کتاب فیه غذای عزیز مومنی اما کتاب و غذای عزیز یک نفره و همین هم پیش اصحاب بوده ایبه می هم نیست اینا خیال کردن نجاشی وقتی این ابارته هر جون محمد ابن رزیم ما چار حالت دادیم یه یک نفر بیشتر نیست محمد ابن قیف بجری کوفی رحیم الله و اسم کتاب هم چون آها بیزنید چند کتاب قضاوت های شفیفتنگیز همی رو که اسم کتاب هم قضاوت های همی نه اسم کامل کتاب هم در ه قضایه و سنن و احکام محمد بن قیس بخش قضایه این کسا بهتا غیر قضایه شد از امام باقر نره کرده حالا این یک توضیح خیلی طولانی داره جایی جا نیست مناسبه نیست لیکن اجمالا من ارز کردم امی ارمونی در این سه سالی که در کوفه تشید داشتن سال سی و هفت تا چهه برای اولین بار در تاریخ اسلام یک مجموعه پرهی که توش خضابت هم هست و احکام هست نوشته میشه تا اون مقتن سابله نداشته اولین بار نده یعنی ما در میان صحابه پر اصول مثلا عبدالله به سر امرعاست کتاب نوشته بوده در احکام هست لکه متفرقه متفرده حدود هزارت یا بیشتر حدیث بوده متفرقه. اولین بار که مثلا الان اهدس کنه هست اولین کتابی که در سنن هست و مرتبه موفقه سال که چون کتاب و تحاره کتاب و صلاح کتاب و تلاش کتاب و خود کتاب کتابه اولین کتابی که در دنیا اسلام کتاب کتاب نوشته شده همین کتابه موفقه مالک تاریخش هم در و هفت تا چه مکانش هم کوفه رو خیشون کتابی <تصفح> به نام از سنن و قضا و الاحکام بعض پ بیشترره هم اول غذا که ازتوننا غذا رو ررق باشه این کتاب این کتاب رو ذدی ها مل در قرن دوم زمانمان چون بعض می که ذدی ها که کم هم فکرش دولت اددن دولت میدون فرهنگ نمی میشه ها این کتاب خیلی منور دادن همین کتاب در کوفه بود بعد از قیام خود ض ری مدینه بود تو مجر کوه بود. بعد بود که را در فارسان بودن از کوفه در آمد قرار کرد 16 ساله بود که در جزجان در صد 19 سالی یا اون سالگی شاید شد. بیه زیدیه که منتقل به مدینه شدن بزرگان زیدیه مدینه بودن محمد عبدالله محض و محل نزکی اینا, اینا در مدینه بودن. اینا امالا همین کتابی که در کوفه بود در مدینه شده به اسم کتاب و اسم کتاب و اما امتبته در خود کوفه گاهیم با حارس نبدالله اول نسبت دادن گاهیم به عبو رافع نسبت دادن گاهیم به عبیدالله الله نبی نسبت دادن میگه که خیلی طولانی من نمخوام باید کار بشم هی یک کتابی بوده که اگر واقعا این کتاب روش کار میشد و درست حقش انجام میشد واقعا ایک از افتخارات دنیای اسلامه چون تا اون زمان اولین کتاب است که مبروه اصلا تا اون زمان کتاب مبروه نبود کتاب و صراف کتاب و کتاب و حد کتاب و سیان فیلترویه مبروه تاریخشن به سی و هفت تا چهره هجری باشن رویت مثلا دست مبروه برد این کتاب توسط محمد نقیز بر امام باغر عرضه شده امام قبول پرموندن ظالم هم این طوره یا لاغل موضع بشه قبول پرموندن اماکه چهکپ نقلل های هم داشته که درست نبوده، من منگران جا اینجا نیست یه جوی که خیلی سر به زنگاه باشه اونجا شهر کاملی خواهم داد. احتمالا این ممثل کردنان اخیررا دو سالی سرها پیدا کرد عث خانم ها از زمین این اولین بار در این کتاب آمده چون دی بر از گزلا از سر رساله در این گرد ص روال جهان چون وارد نیستند به سرهثریشی، اولین بار، از دخواب سید تاریخی این مسئله که از زمین ایرس میبره خان زن یعنی زن، ما ما اینجا همسر نه زنیم دختر آدم مادر آدم همسر ایرسار از زمین ایرس نمیبره چون زن در فارسی تو عربی با زوجه زوجه ایرس میبره نه زنه و نه مطلق جنس امره زوج زوجه ایرس میبره اولین بار توی این کتاب آمده. و به احتمال بسیار قضیه هم از این کتاب توسط عبدالملک ابن مروان به شام رفته البته بنی ام قبولش نکردن یه شرط تاریخی دا کردن من اینوارد تو مسئله شرط خاالشه خاص خودش هم داره کلامش اینجا نیست اادام جاده اووااردی هم تو مسئله مفرح بود. اون مسئله مطرح میدون مسئله ارث خانومها. ها به خاطری که آیشه اددای ارث زمین میکنه که پدرش و عمرتون زمین لحظ می کرده احتمالا اون مثلا برد اوقااردی و کلامیان داشته فرستررت نبنداه اون اولین بار در فرمه ما در این کتاب آمده این کتاب اجمالاً در کوفه وجود داشت، توسط زیدی ها شده بعدها هم موجود بوده و که اون چیزی که ننوشتن مثل نجاشی دیگران متعرض نشدن این کتاب از زمان امارساده نورد بیمهری طائفه برار گرفته دقیقا هم نمیدونیم برحال امام این رو قبول نداشته لذا کمیاباشه هاش این کتاب اصلا از میراز های فهرستی ما هرزم میشه ما بوده ها حالا اون چیجور خیلی تخصیل بره حالا ناقص بگم شوقه دونستی بگم بودن چود میشه به مرداری که رفت شغنو کنه عرض این کتاب من کردم شواهد ما موجود در زمان کولینی هم موجود بوده زمان صدوق هم موجود بوده مثلا در اختیار صاحب دا الان جاهای دائم از علی بن ما نداریم احتمالاً از این کتابه که ریشه ای تاریخی است این پیش ما مصطفی کتاب قضا و اوسران و احکام پیش صاحب دهان می‌بینید سال 360 350 کلی 330ه و اون تازه در مصر خود در بغداد ده و در خونه. شواهد ما کاملا کافی است که این کتاب موجود بوده و که معذالک نه قدیمی نه جدید از این کتاب نعم کرده پیگیری که ما معتقدیم اینا چون این بحث اصلا بحث نشد غلامان وارد بحث نشودن یه ترجمه تمامش اینجوریه ما اونی که ما اعتماد داریم از زمان امام صادق و, و احتمال میدیم یک جنبه کلامی هم پیدا کرده احتمال میدید چون ذی‌ها ها عنوان کتاب و علیه اینا نگوشن هرکدین نجاشی دارم توجه نشد نجاشی ای که عبدالله احمد سوالی کرد به پسر از باب کتاب علیه بار کتاب علی رو بیا این به ما بودن ما یک چیزی دیگه داریم کتاب علی اون درسته اون که املاح رسول الله و علی تعلیه بیده و در مدینه نوشته شده و حد خب در شهاداد پیغمبر در مهلت پیغمبر اصرار احمده رو اون کتاب علی میده زیدی ها به این کتاب علی برمی دشتن روشتن شد چرا در تاریخ ابهام شده روشتنی زنان مخفی شده و این ما اصطار شدیم بود که اون کتاب علی رمز امامت می توفتن کلامی شد جنده کلامی اگر اون کتاب علی جاری بود رمز امامت ده. این کتاب اصلش مال علی غلی طالب بودنش روشنی. به ذهن یاد قوی تر از همه مال عبید الله سر عبی رافل باشه تو طولانی اجازه تسلیم میخواد یه آشنا نیست. و ما اون چی که امام باغیر به محمد مهمت در به بزین میاد خالیه. چون میگم بزین میاد چون نوشته نشده بیشتر به هر سو شو جهت شواهده. بعد ها که محمد در نگریست این کتاب نقل کرده. دو تا نقل اساسی داره محمد. یکی اصل نهمیده که این نقل اصل نهمیده. این نبود. نقلی که تقریبا برای نقل نه نقل کرده اما در کوتاه ارداید ما را اصل نهمیده. مالت به عبیده. عبیده یک ناگلان مولده سرش ابیدو ابید بن محمد بن قیس چون یک مرده رو دو تا روایت مشخص از ابید بالله همیشه از عاصم اون میگه ما به شترتین به تصور خودمون آسن... عاصم در که جوابش باشه عاصم بعد از اینکه می‌بینی که این کتاب مورد مرزید امام صادق نیست به احتمال قوی اون مقداری که مورد تایید نبوده حدیث نکرده یعنی اون که در اجازه خودش هر کل کتاب نبوده این مقداری که مقبول بوده آورده اما عبید که به سر ایشان باشه کل کتابو آورده ها. این سر اختلاف عبید با و لذا نمیدونه که کتاب کلا باطله مثلا قسمت های از کتاب مرد تایید بوده یعنی پیش امام صادق رفته بود اون صادق نه پیش امام صادق نرفته بعد دیده تاس امام صادقی مقداری از این کتاب رد شده اون مرداری که رفت دیگه اجازه تحریف نکرده اون مرداری رو حدیث گفته که مورد تعیید امام بوده پس پس مثلا سی درصد کتاب چه درصد کتاب هست کرده محمد الگرس سر و اشتهار این نسخم همینه مثلا این قسمت از همون کتابه اما قسمت که مورد تعیید بوده پس بنابراین این حدیث بله حاضر سندی جز به مسادر اولی ما جز قسمت که مورد تایید امامه البته همین الان هم روایت محمد بن غیستین و سیاه هم, هم همین الان هم مشکل داره همین الان با این تنمیدهایی که خوبه چون بیشترین روایتی در کتاب شهادات و قضا و حدود و دیاته دیگه در اونجا باید بخش کامل انجام بزید اینجا به همین مقدار راجع به تاریخ روایت و مصدر روایت و سند روایت که اشکال نده و اما به لحاظت مضمون ولداب داره کان عمیر و مونین این از همون نسخه هست لا و به قول عرافه ولا و ولا لسه ولا اقبل و شهادت قاسفه واقعا احتمال قبیل میدیم متن عبارت در همون کتاب اول بوده خیلی عبارت ذریفه اون ستارو تعدیل کرد قول اون فاسقه الا علا مسید هر که شهاده <تصفيق> خب اللهم بکنه ولا فاسقه الا علا مسید خیلی عزیبه ولا اقبل شهادت شهاده اولیار امولی ها رو فهمدن لا آفل و به قوله فرق دین قول و شهادت چیه؟ خیلی عزیبه ستا رو با تبیر قول ورده یکی رو با تبیر شهاده سعی بهش اینه که شهادت معادل شهادت یعنی امر حسی اگر کسی آهان گفت مثلا من دیشب اونجا بودم این آحاد جسمی خارج قحومی اگه قابل باشه اما قول امر اما حسی و غیر حسی بلکه در اینجا مراد غیر حسی مثلا هر یک مالی پیدا شده یا چه اداره آگاهی اموالی پیدا شده یک کسی که سابقه دوزی من کارم دوزی درست رو دارم کنم میکنم من, من میدونم این جنس مال شمال شهر تهران مال خونه خونه ها رو میزن این جنس مثلا توی ویدیو خواستی ما اونی جاست یعنی به عبارت اخراق یه نوع قول یعنی اشنا اون حت دوز روی قباردی که میدونه خودش رو آدم دوزی و خودش میگه این مال فلان جاست نه این که شهادت میده خیلی لطیفه امام میگه این قابل قبولیست ولی میگه من گستا و سابقه دارم و آشنایی دارم و خبرویتی دارم این قابل قبول نیست هم در اینجا مراد الحاق نسبه چون علم غیابه مثلا میگفته این از انگشتی نما میگه این, این پسر سرونه که زعوم پیغمبرم داره که این تو میشه بحث غیاب فرض وقا اسامه خودش خیلی بور بود و سفید بوده، و زکر او صاحب اثرش چون مادرش امیمه بود آفریقایی بود در رنگ سیاه بود امیمه بین شبیه مادرش آرام بود از ابن زکر مشکی میگه این بچه پدرش دید. چون نمیخواد منم دیگه پدرش الان تا یه ای روز ها خواب بودن پاهاش هنوز لاف میون بود یه قاضیی آمد ای ای بود این پاها برادر قضا من بعد این که سرونه وقتی بچه‌ساز یه بود یه شکل بود و علم قیادت پیغام منو قبول نذید منو نجاست منو خوشحال کرد این که لا اقبل و قول قائف یک نوع حدسه. خب یه خیلی شهادت نیست. میگن مثلا این انگفتایه که با هم این پسر اونه هست. یا این پسر اونه هست. نیسته اندیه های کلام متعارفه. در بس؟ بلا؟ نیسته بیانید. نسف اون. یک چیزی شبیه بونه. قول قائف بونه. عراف هم نسبت مسائل از راه نجوم نسبت میدادن. مثلا میگه من با علم نجوم در تاله مثلا به نسبت مثلا زن دیدم که خواهر رو زنده‌قرونم که مثلا عمل زشام انجام بده خب اونم میگه خب این منجم گفتید من فکر می‌رسم جواب چون میگم این علم رو همون به اصطلاح اطلاعات غیبی خودشون میگسن مثلا میمان میگه بله آقا من دیدم با علم نجوم این خونی که به دوشه فلان چیزی رو دیدم من طالع دیدم فلانی اینو عذاب بده امام میخواد این ا عقوایا من میگم امام شهادت می‌ذارم که من می‌دونم این آمدوزی کرد. از کجا میدونید؟ من تو تاله اش کردم تاله شو کنم دن؟ تاله نآمدم. این تاله برو جنبله این توجه کی کرد؟ همان گونه لا آقب و لا آخود قول عراف این تعبیر بین قول و شهادت ظاهرا این باشه. قول اعتماد در حضیاد داره شهادت حسیه سرته. درک کردیم؟ حضیاد میخوام بفهمم که قول عراف قابل اعتماد نیست. همون. و این مطلب خب اجمالا مطلب درستی طور کار به نجوم هم نداریم اما اجمالا قضای جزئیه رو با علم نجوم اسواسش غیر صحیح هستند اون یک راه دیگه اصلا این نیستی چشم چشمت به اصلا یه نحوه کهنه و تکهنه و تلسات و ایناست این روایت و جز روایت مطلق قرار بزیم که لا آخوز و به قول عراف پس مراد از این روایت این نیست که علم مرادم این نیست که انسان نجوم رو به این معنا یاد گرفت اما عمل نکرد باشه. مراد این است که انسان ترتیب آثار نمیتونه بده تفکر کنیم؟ ترتیب آثار که به گاما این آوالی که گرفتی در تالهش نگاه کردن ساعت تولیش نگاه کرد دیشنم نگاه کردن این مال تو رو دزیدی این مالی که دزیدیده این دزیده ببینید دفت بکنیم چون این اثبات کرد. از این وقایت بیشترین در نمیاد در نمیاد این رجون باطله در نمیاد تعلیمش حرامه این به درد اون کار نمیخوره مجلومش هم درسته سندش هم ماتره ها حدیث شماره سه فرده این شاء الله از سلالله ها الان